روی چرو روی خدای تو جان جهان رو نمای تو مربو سی و صفای من در حرم با تو یا سیدی یا امام رضا خوش آمدی یا امام رضا خوش آمدی یا امام رضا یا سیدی یا یا سیدی یا امام رضا خوش آمدی یا امام رضا گوشیل امسابل جای شما قاله چندگیش ما حجبه يتوني لا نهران بود اما عوضه صراحی بادفاع یه من لوگ خدایی بود اون انقدر بگو تا صدا در آنه اشون <تصحيح> یه روحانی بود یا سیدی یا امام رضا یا سیدی یا امام خوش آمدی یا امام رضا خوش آمدی یا امام رضا یا سیدی یا امام رضا یا سیدی يا. خوش آمدی یا امام رضا روی تو روی خدای تو تان جهان رو نمای تو مرغ و سَیو صفای من در حرم, صفای در, حرم صفای در, حرم صفای در حرم با صفای تو در حرم با صفای تو یا سیدی یا امام رضا یا سیدی خوش آمدی یا امام رضا ای به خدا هشت ولی وی به نبی سب و علی دل به بلای تو منجلی بر سر ایران نوای تو بر سر ایران نوای تو. تو یا سیدی یا امام رضا امیر رضا بس ای پاک پیغمبر ای نهروه هایدری یوسف زهرا قد حری کل شود دار ولایتو کل شود دار ولایتو یا سیدی یا امام رضا ای سر ما خاک کراه تو، شمر ما در پناه تو، ملت ایران سپاه تو، در دل هر شی اجای تو، در دل هر شی اجای, اجای, اجای, اجای تو، یا سعیدی یا, یا امام رضا؟ آیا یا امام رضا؟ آها چه ممل چه قضا تویی نور دل امر رضا توی جان دو عالم رضا توی اصل ولایت رضای تو اصل ولایت رضای تو. تو یا سیدی یا امام رضا یا سیدی آ خوشا یا امام رضا خوشا ا نوره خدایی امام رضا چونم نور خدایی امام شما هم نور خدای نوره خدایی امام رضا گره گره گشایی امام پناه ما پناه مایی امام رضا شیوه صحن و سرای تو شیوه صحن و سرای تو یا سیدی یا امام رضا یا سیدی یا اگر برخانه خدا جای انسانیم سلامت می‌ذارم این بیت از ایشونه همین بیتشمو بیشتر ندارم. اگر برخانه احسانات شاه مهمان نمیخاहीं به بنده میزبان درهای مهمان خانه خود را عبر. به بنده نیزمان درهای مهمان خانه خود را به مشهد قریب ما قریب را به گو بیا وریز نامیدست طبیب را به گو بیا وقت رفتن از جهان دمی که از نزه جان طبیب را به گو حبیب را به گو يا <عش> ابي ابن مسرزاو ای او بده شي خدایا اين سازنده خانه چرم من نااميد بر ما گردا يا آمين حق ابي ابن مسرزاو ايدينا يادو ديدي ولادت و سعادت و فرج و رور حضرت رقیه الله عظم قرار بده یه ای داستان اینو یه ای نفر, ای نفر تریف, تریف می کنید دو, دو, دو سه نفر دوست دو می مشهد, مشهد. یه نابینا هم باشون بود حوض اول اینا رفتن این نابینای تو خانه نشسته بود گفتن برمیگردیم گردیم به قول مروح یه شوخی کنیم با این همسفرمون که نابیناست بگیم بله امام رضا چرا نیومدی امام رضا به همه برات آزادی از آتش داد گفتم باش شوخی کنیم اومدن دوست نفری با هم احت و پیمان بستن جاد خالی بود امام رضا به همه برات دوری از آتش رو میداد تو نبودی به تو بده اون روز گذشت فردا که اینا رفتن به سوی حرم او هم گفت من نمیرم الان اینجا هستم الان روزای دیگه میرم اینا که رفتن رو به حرم علی ابن موسرز آقا به دوستان و ظائرین که اومدن بهشون برات آزادی از آتش رو انایت کردی یه وقتی دیده مامورزان مقابلش استاده اجماعن صلوات و جری خد یه وقت دیده مامرزا بهش میگه گسته نخور برات آزادی از آتش برات خط دست خط همایونی علی ابن مسرزاد داد به این نابینا نابینا بوسید و به چشمانش کشید و در اون جیب گذاشت اونها ها اومدن گفتن بازم ما بهاش حرفی داریم بازم حرف چند روز پیش رو تکرار کنیم اونها تا اومدن بگن گفت، حالا شما هم گرفتید اما ما هم گرفتیم نشونشون داد اونها خیلی حست خوردن و از گفته خود بود. خدایا به حق آقا علیابن موسی لرزا اون برات آزادی از دوزخ رو بر همه ما مرح